Se jää edaha. Ah. Yeah, I won up, من خوشمندم سلام عرض کردم مرادی هستم رزرو کردم خجلا مرسی تو کدوم که از این خونه های multimolla این موردی خوبی خوبم نگران نباش همین نقطه حیات خونه ما بود دارم فکر میکنم یه روزی پای مادرم پای پدرم روی همین خاک بوده که الان زیر پای منه من اینجا بوی مادرم رو حس میکنم صدای پدرم رو میشنفم اون روزی که باهاشون آشون کردم اگر میدونستم این دیدار آخرمونه شاید یه جور دیگه می کردم شاید اصلا خدافزی نمی کردم حالا اونا خودشون خاک شدن زیر پای دیگرون بله میفهمم قاعده زندگی اینه آسیا به نوبت دیگه چشم هم بزنی همون خاک شد حالا تهالا خدا خیلی خاکی هستم شما بلند شین خاکی نشین بله بله آقای محمدزاده آقای محمدزاده اوکی مرسی چنگ <تصفح> احمد آ چرا تو منو خوشحالم کردی آه خیلی خیلی خوش اومدید بشین بشین, <تصفح> بشین اگه <تصفح> <تصفح> <تصفح> جلو نمی امدی و یا اسممو صدا نمیزدی امکان نداشت بشناسمت انگار همین دیروز بود هم دیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم و تو گذاشتی و رفتی این برق نیم قرر گذاشت میگم اون ها چه شکلی بودیم حالا چه شکلی شدیم انتظار داری 25 ساله بودم خب منم هم مثل تو پیر شدم دیگه مواد که ریخته اون چند تا شیبید مو هم که سفید شده کله با غیرت که مو به سرش نمیمونه احمد جان کچالام رونه رو میخورن. با این که زمان ظاهرتو غارت کرده اخلاق دواز نشد یاد تو روی در خونه دیدم خیلی تعجب کردم خوش خطی تو ماشاءالله حفظ کردی شنیدم تو هم خارج بودی درسته زورامو زدن سه سال بیشتر نیه نایوردن آخرش آدم به خاک وطن <تصفيق> موقع آمدنم با خانومم اختلاف پیدا کردن اون وقت قضیه زنت به کجا کشید؟ الان چیستاری که مجرده راستی؟ از همسایه های قدیم چه خبر؟ ببینم کدوم همسایه؟ دلم میخواد قبل از مردن یه بار دیگه ببینمش بعد دوستان همه جمعن آقای مرادی که از دوستان خیلی قدیم من چند روز از پاریس آمدن آقای مجید <تصفيق> کمپانی خبرنگار آقای دکتر شهرام هم که از دوستان خیلی خیلی صمیمی من خوب چه خبر؟ <تصفيق> سلامتی. مجید جان حضور در بد که این دوست ما آقای مرادی دنبال یکی از رفقهای خیلی خیلی قدیمیش میگرده از صبح تالا تهرون ما زیروپا کرده این پیدا نشد که نشد اسم و مشخصات چون میتونی بدی با آقای اشروفی اون توی بیمه است طرف اگه بیمه باشه مثل آب خوردن میتونه پیداش کنه. جناب آقای مارادی ایران خوش میگذاره؟ شکر شدم برای دیدن نزدیکترین دوستها و فامیلا مجبور شدم به قبرستون برم قیافه شهرم عوض شده همینطور حرف زدن مردم. منو چند بار حاجاغا صدا کردن در صورت که من اصلا حاجی نشدم تا حالا به سراغ رفقای قدیمم هم که رفتم پیر مردهای مریض و درب و داغون رو دیدم که اصلا هیچ وقت فکر نمی کردم که اینا میتونن دوستان من باشن ما قریبه قریبه وی بی؟, بی دیگه چی عزیز من اینجا ایرانه ببینم چرا نیومدی باشگاه مگه شما هر روز اونجا این آره بابا ما کارمندان شرکت تهران ولی آقای اشرافی هم اینجا تاش داره اشرفی ببین یه لیست کامپیوتری واسه وردن اسم و آدرس اختر خانم هم توشه اه اه اه تا, تا کی هستین یه چی تا زمانی که اینجا تعییر بشه عمره بیرون کنه اوکی اوکی حمی الان میام ولش برو ولش برو مادر خاله در بزنی هاشم تو اینا عسا اینو خونی ناموس من ناموس تو طبی احمد جان یه موضوعی میخواستم بهت بگم تو چهر سال تو ایران نبودی عوضا و احوالی این مملکت خود عوض شده حقیقتش مردم رو مسائل ناموسی خود حساس تر شدم سعی کن که احتیاط کنی تو هر کاری زمینان یه وقت شر به پا نکنی کار دست ما بگیر نه, نه نه من فقط میخوام ببینمش ببینمش چه شکلی شده خوشحاله خوشبخته فامیلاش چه جوریم اگرم مشکلی داره کمکش بکنم جونگیر خان عزیزم ای کاراچ چی بوده کردی؟ مملکت قانون داره معمور داره خودشون میدونن چ کار باید بکنن مامان شما بهش بگو به شما چه که دخالت میکنی ها همین بگو پسر رو چیکار کرده بود ننه چیکار کرده بود مردی که بی همه چی افتاده و دنبال مادر ناصر داشت. مخشو میزد باستم تموشش کنم وای روم سیاه بشی دوره آخر الزمان شده خجالت هم نمیکشه خونوادش باید غیرت به خرج بدن آخه تو چیکار به کار مردم داری؟ خونوادش کیه؟ اهل محل از من طبقه دارن ناموس مردم باید امنیت داشته باشه ما تا این تو این زندگی میکنیم خیلی خوب ازیزو من میگم احساب خود تو خورد نکن خود دانی اینن دست نزد برو تو الو وله الو الو سلام عرض کردم میتونم با خانم اختر موهیمی صحبت بکنم فرمایش همون خانم اختر موهیمی که 40 سال پیش تو خیابون امیری کوچه مفید زندگی میکردم؟ گفتم فرمایش ایداد کردم Ja بریم پس نریم چرا <تصفح> بریم هی من ازدواج ازدواش نکردی؟ نه آقا البته دو ماه عقد کردم ولی بعد دهم کن عجب دفلایی دختره خیلی زایی حالت به بخشی دار بعد خیلی استعداد به خرج میدو توی شوهر خوب دست و پا کنیم من داشتم خودم فدا میکردم واسه کی واسه خونه بودم که به قول مرفت یه مقداری آب گریت شن اما دو افتاد که ارور دادم جونم برداشتام فرار کردن ولی آقا خب کلا دخترنم یه کم زایه بود البته هر کسی زیبایی خودشو داره دختر دیگه ای رو دوست نداری نه بابا آقا اینا با این مهدی های کمرشیکن که جلالت میکنه خودشو به دلار چند میلیونی کنه که چپشم نداره بقولمعرف تو این عصر فجار ارتباطات آدم به شکلی زنگ گرفتن نمیافته میدونی آقا پیمان هر کسی توی این دنیا یک جفت داره ممکنه یه روز این جفتش بیاد و از کنارش رد بشه و اون هیچ وقت متوجه نشه و از دستش بده بله درست میتونم بپرسم تحصیلاتتون چیه؟ من لیسانس جامعه شناسی هست پس چرا راننده شدی؟ دل... دورشت خودمون کار پیدا نشد دیگه زندگی خرج در آقای این موردی عجب عجب غلیلی بخره عزیزم قربونت برم بیز از بابات اجازه بگیریم اون وقت اس با خودم میبرمت نون وای نون میخاری دروغ میگم ای حیوانه بابایی دروغ نمیگم ای بابات بفهم ما بی اجازه رفتیم بیرون هم به تو درو میکنه هم به من ماشي اولش خادم میدم مامان بابا جان می Thank you. از کجا من اون گزارش از اون برا نخورده بوده این دوباره پیداش میشه؟ اونم درست امانی که من اونجا باشم عجب غفلتی کردم ها تا آخر عم خودم نه این بخشم شما چی؟ بسش با مغازدار سر کچه شون صحبت کردم؟ با دخترش رو دامادش زندگی میکنه یه نوشونم که از اونیکی دخترشه از شیراز اومده با اینا زندگی میکنه دانشجوه شوهرش چی؟ مغازه داره گفت شوهرش مدت هاست که فکر شده اه اه شوهر خداویاموردش چه لطفی در حق تو کرده <تصفيق> آه ببخشید من قدیده آخه همچی محروقتی ایلیونه بشه <تصفيق> مجید خان من از این ناراحت نیستم که چرا به من میخندی من از این ناراحتم که چرا نمیفهمی باریکن راست بگه پنجا ساله هنوز همون نگرفتی خود اینو این مرغان قاغو مسروات دانشگاه هم داره دیر میشه فکر نمی این وقت روز با اینکه اینقدر شلوغ باشه شلوغ دیگه دوش شمالتون چنده؟ شماره چی؟ شماره نوبتتون آها هفتاد و هشت خب مال من شستو یک. شما بیان کارتون انجام بدین کارتون واجبی میخوایی دانشگاه من وقت زیاد دارم بفرمایم نه زحمتتون میشه تارف نکنی نوبت من شما نداره بفرمی مرسی پس قبضاتونو بدی من پرداخت میکنم خب برای شما زحمت نشی نه چه زحمتی پرداخت میکنم خیلی ممنون. بفرمی نفتاد خیلی دوست دارم. ببخش میتونم یه سوال خصوصی هزتون بپرسر بفهمم <تصفيق> چجوری بگم شما خودم مجردم شما مجردی بله خدا روش میدونم فیلان عجله داریم ولی اگه ممکنه شما رو تلفون یا آدرستتون داشته باشه به چه منظوری؟ به هیچ منظوری فقط اگه نظرتون باشه با خانواده برای آشنایی بیشتر خدمتتون برسیم اشکال نه لگه اگر مشکلی است من شما شمارتون از رو قبض حفظ شده خدا حافظ به سلامت اختر ببخشید شما نشناختی نه والد به جا نمیارم پیویه دیگه منم احمد مرادی کو کوچه مفید اختر. فشار فشارم افتاد پایین که ایتور شدم بالاخره باس معلوم بشه که حال شما واس بد شده یا نه دورت جون دورت جون زبونم لال ای سرتون میخورد به جدول چی میشد هیچی نی خودم میدونم که چم شد حالا ایه دکتر ببینتون مگه چه اشکالی داره جلوبت چیزی نگو میترسه قربونت برم الهی ترسیدی برای مامانی ها ها وقتی تو موازی من گیره کردن اگر بزن تو قرم شد قرنشو قربونه درم قربونه شکلی قربونه یه دست دادشم یه ایچیشی عزیزم کی بری بچم خریده؟ بابایی بودو بیگه بابایی با بادر بزرگ ازیاد نکن باید نمی کن نبرش اگه واسهت قش کرده یعنی هنوز دوستت داره فراموشش هم نکرده خوب خوبه تا اینجا خوب پیشرفت کردی ادامه بده <تصفيق> مجید این مرادی باید واسه تو سرمش باشه. یاد بکیس بله اومدی چی کار چقدر دیر. اقدر تو رو خدا قش نکن فقط میخوام دو دقیقه با حرف بزنم، همین ببخشید دست خودم نبود شما کجا اینجا کجا این طرفا؟ خانم بچه هات از زنم که جدا شدم دو تا پسر دارم هر کدوم توی شهری ام خودمم پاریس اوضاع جوری شدی که 6 ماه یه دفعه هم نمیتونیم همدیگه رو ببینم تو چی شنیدم که تو هم تنها شدی گذشته گذشته نوش هم بعد مرگ سوراب چه فایده من دیگه اختر گذشته نیستم بهم نگاهو کن پیر شدم پیری یک نقابه من زیبایی پشت اونو میبینم اختر تو هنوز خوشگلی <تصفيق> خدا اصلا عوض نشدی قد خوب دروغ می که آدم دوست می داره بازم بگی ولی این حرفها دیگه گذاشته واقعیت زندگی چیز دیگه ایه اختر. اگر بار پیش تنهاد گذاشتم مجبور بودم اما الان اوزا عوض شده آمدم که کار رو تموم بکنم تموم؟ این حرفها چیز برای منو شما زشت داره بهتر فراموشش بکنی به هر حال خوشحال شدم دیدمت همش فکر میکردم کجا هستی چیکار کار داری میکنی با کی زندگی میکنی بعضی وقتا خوابت میدیدم خدا رو شکی سالم و سلامتی اینجا محل ما هست ترسم برای من پیریزن حرف دار بیارن بهتر شما به فرمان منزه اختر من دلم میخواد بیشتر ببینمت با هم بیشتر حرف بزنیم اینم شماره تلفن هوتلم جیلو مردم داری به من شماره رد میکنی؟ خب پس چی کار من که راه افتادم یه باشه که بندسش تو زنبیرم ولی منتظر نباش که بهت زنگ بزنم و اونه هاش اومدش شب بهت زنگ میزنم نمیخوی باشه شاشی؟ روم نمیشه بعدا باش <تصفيق> پیش قابل تحسینه آفرین. ای کاش یک هزار استعداد ذاتی تو رو من داشت <تصفيق> سیستم سایقتون چجوری خوب پیش میره؟ سایقه که نه یکی دوتا رد و یه چه برق چی میگن؟ اغج آسمون قرنبه خیلن توپو انداختم تو زمین حریف آقای عاشق اما خداییش خیلی بهتون بابستی شد هم از لحاظ شخصیتتون هم از لحاظ خاکی بودنتون اما شما خیلی با احساسی شما من یاده رابرت میندازی رابرت؟ آره رابرت دنیرو تو هم منو یاده تام میندازی تام کروز جدی میگی؟ چطوری <تصفح> <كتاری> تامی؟ پرمونه <تصفح> درم <هم> اون رابرز <تصفح> شرب بلوچستان ایمیل خوردم من صحبونم نخوردم نه منظورم میل به غذا نیست منظورم ایمیل اه اه، اه، کامپیوتر داری؟ یه حرفات چی چیه میزنی؟ این کار همون جوونجه کنی من برای این کارا دیگه پیر شده من پیری نمی بینم من ذات پاکتو می بینم که نظیرشو ندیدم بونکوخ دل پاک مهربونی رو میبینم که،, که یه عمر به خاطرش چی کرم کردم آرامش لذت بخشی رو میبینم که یه مدت کوتاه با تو داشتم ودیگه هیچ وقت تجربهش نکردم اقدر ما داریم تکلیفمونو با چیزایی که توی زندگی از دست دادیم روشن میکنیم چیزایی که یک عمر ازمون دریغ شده پس چرا رو گذاشتی منم تونی بفهمم منم دونی من چی, چی کشیدم چاره ای نداشتم بابا ده بکرد گفت من یک لاقوام آس و پاسم من فکر کردم برم فرانسه پیش داریم یک دو سالی کار بکنم یه سرمایه دندونگی که بابا تو راضی بکنه به دست بیارم که یک سال نشد چه تو ازدواج کردم مجبورم کردن تو نباید من تنو میذاشتی میرفتی خودت مقصر بودی باشه من مقصرم اشتباه کردم قبول دارم حالا پشیمون برگشتم بلی ها این برگ رفتی زن گرفتی چیکار میتونستم بکنم وقتی شنیدم تو ازدواج کردی شوکه شدم کارم به دکتر رسید بهم توصیه کردم که ازدواج بکنم شاید تو رو فراموش بکنم من مجبور شدم با کریستی ازدواج بکنم عاشقش بودی؟ نه دوستش داشتم یه دوست داشتن معمولی یه چیزی مثل احترام اما دلم جای ای بود روحم نارون بود میدونی زبون همو میفهمیدیم اما حرف همو نمیفهمیدیم به خاطر همینم هم گذاشت و رفت تو چرا سب نکردی؟ به اختیارم دست خودم بود من هر وقت یادتون تو میفتادم هرفت طور میزدم آقای خدا بیا مردم دوبان میزد تو کلم همه ی دنیا زورشون شد. رو زدن که ما رو از هم جدا بکنن اما این دفعه دست خودمونه از هم جدا نمیشیم به هیچ بهانه و قیمتی چرا این همه دیر مقدر دیر دیر نشده میگم این مرادی بدجوری ترمز بریده دو ساعتی یه برن تلفانش اشخاله اون الان داره دوران شیرین پخت و پزه میگذارونه. معلومه چون <تصفيق> پیرا هم بدپزن هم دیرپست این فرمایشات شما هیچ ربطی به ما نداره دود از کنده بلن میشه مجید خانم تو خدا ملاحظه منم بکن من که نمیتونم هی بیام طور ببینم و دقیقه به دققه به تیلیفون بکنم تو رو به خدا دیگه قرب نکن اختم من طاقت این یک رقمون ندارم این تیر شکسته منو دیگه بیشتر از این نشکن عزیز دلم تو که واسه احمد جونی نذاشتی اون از دست زبون بازی این مردم من دیگه گول ترنم من تو زندگی هر بلای سرم اومده به خاطر این بی زبونین بوده اگر یه روزی گند بزنم من دیگه نمیتونم زیاد باید صحبت بکنم میفهم انا؟ خداحافظ می میدونی تو ب... خیلی داری سخت میگیدی یعنی... نمیخوام این رو بگم ولی آدم میدازی توی ترافیک و استرس آره بیه کم هیچی مادرم من تو اتاق باید سلام میرسونه می نینید داشتم می گفتم چرا اینقدر حراسونی اختر تو رو به خدا به جز خودمون به هیچ کس و هیچ چیز دیگه ای فکر نکن ریلکس باش نمی تونم اگه یه وقتی آشینه کسی ما رو اینجا ببینی چی کار کنم به بچام چه جوابی بدم خدا من رو گمه خدا میکشه حامل نگیرنمون که گفتی با سن و ما کاری ندارن دنبال جوانان تو اینجا نبودی خبر نداری اشرف کنم هفتاد سالش بود که گرفتنش بسرمای خارشوهش هشتاد بالو داشت که افتاد. خوب اون وقت چه کارشون کردم ونه اونا که به ما چیزی نگفتن ولی آبروشون رفت دیگه خب، اگر اینقدر قضیه خطرناکه چرا ما نمیریم هتل با هم معاشرت بکنیم ها هتل اون خدا هم ما که هنوز نهرم میسییم اونجا خطرش بیشتره. اینجا بگیرن ما خطرش کمتره اگر مسئله محرمیت و نامحرمیته خوب چرا با هم محرم نمیشین؟ دست شما درد نکنه احمد چه انتظاروی از من داری من بفک فامینام چی, چی بگم به دوما بگم برام خواستگار پیدا شده چرا که نه این حق مسلم ماست توی سرین به ما خندم اگر تنها و غمگین و بدبخت بشین برامون گریه میکنن که حالا دارم به میخندن؟ متوجه نمیشی. ما دیگه جوان نیستیم پامون لب گوره نباید بیذاریم آخر عمریم از بکنه. بکنم فقط به هم تلفن بکنیم باشه داری منو به قبر سون راه نمایی میکنی دلت میاد <تصفح> تا دلت میاد من انگوش نما بشم به خدا روش ندارم نمیگرم مادر بزرگمون فیلش یاد اندسون کرده خب بذار بگن ما گناهکاریم که که یکم دیر به هم رسیدیم اختر تو تنها دلیل زندگی من هستی من سختومه. من دارم استواج میکنم نه نمیتونم وقتی فکرش میکنم از خجالت آب میشم به خدا حق در این لحظه سرنوشت ساز زندگی ماست. به خدا خیلی آسونه میتونی فقط کافیه بری خونه خیلی راحت بهشون بگی که من خواستگار دارم. همین استفاش توی سر خیلی سخته. هر صدام دربارت سخته. اینجوری نگام نکن. خجالت میکشم استانستون نگاه نکنید نتاست احمدو ای عزت فورستان بو با هم دیگه نووزو هدیه باشه تا وقتی من در کنارتم از هیچی نگران نباش اگه یورو دارید نفروشید اگرم ندارید پیشنهاد می‌کنم بخرین چون داره میره بالا بعدا نگین چرا به من نگفتم بابا تو رو خدا حرف تجارتو بذارین کنار فکر میهمونی امشب باشیم که توپ توپ. احمد جون یادت نره ها بیا ببین خوشنگ چه میکنه صداشو تا حالا شنیدی؟ اختر قراره که با خانوادهش راجع به من صحبت بکنه قراره بهم زنگ بذاره امشن بابا این که کاری نداره تلفن خونه منو بهش بده اونجا زنگ بزنه نمیدونم چجوری شروع بکنم گفتنش برای من خیلی سخته من شماها رو دوست میدارم حتی نمتونم یه روز دوری تونو تحمل بکنم جانگیر خان، درستی که خدا به من پسر نداده ولی به خدا شما جوی پسرمون برای من پر کردی ما چاکر شماییم چه چجوری منظور خودمون بهتون بگم چه منظوری مامان چون به سرمون کردین خب بریم سر اصل موضوع از تو رو خان خجالت میکشن این حرفا کنومی مادر جور خجالت کنومه شده تا حالا شما یه چیزی از ما بخوای ما مزایقه بکنیم ما یه قولی به شما دادیم رو قولمونم هست. میدونم. به خدا من اگه یه روز ای خوشگل خوشکلمو نبینم دق میکنم اونم به چش من کارمو راست ریز میکنم که ایشالا هممون هم با هم دیگه بریم با سپولشم نخور خدا بزرگ با هم شما میام کجا مگه شما نگفتی میخوای بری پابوس امام رضا من یه دوست نداشته بریم اینجور که پیداست ما مارم تلبی ده میریم هم فال هم تماشا هم زیارت میکنی هم سیاحت هرچی قسمت باشه میدونم میفهمم من سعی تو خودتو ناراحت نکن بس بر هم دیگه. بر نمیاد؟ نمی‌تونه. هیچوقت بیشتر که چی شده احمد جون؟ کی چی؟ برای همیشه ازم خدافسی کرد. شما به مهمونیتون برسی حالا میخوای چیکار کنی؟ mi جواناشم که قرار یه عمر زندگی بکنن تو این زمان زمونه طمع ازدواج نمیدم. آخه مرد حسابی چه ایسوری اونم تو این سن و سال هر طمو بزنن اگه قراره چند سال عمر بکنی 10 سال 5 سال تازه نصفشم که خوابی خب اون خانوام حق داره داره در کمال آرامش و آسایش در کنار خانوادهش زندگی میکنه البته اگه شما بذارید من نمیدونم چرا بعضی از آدما به باونه خوشبختی اصرار دارن حتما خودشون رو بکن. تو کارت راه حل دارید به شرطی که خودت سختش نکنی تو اصلا چرا دوست داری؟ لغمه رو دور سرت به چرخونی و بخوری <تصفح> یه سیغه محرمیت رو و حتما باید علمشنگه رو بیوکتی اصلا روز چهارشنبه، روز میلاد پیغمبر روز بهتر از این تر از این داریم آقا جان از هیچی هم نتر کار خلاف شهر که نمی کنی پس همگی میگیم، ای یار مبارک بودو ایشالها مبارک بودو از زمانی که من خودمو شناختم آرزوم این بوده که یه روزی زن من بشی با من ازدواج بکنی نشد حالا توی این سن این فرصت رو پیدا کردم که بهت پیشنهاد بدم زن من بشی. بهتم قول میدم که هیچ کس نفهم فقط من میدونم و تو خدا و دوتا شاهد همین مورک باشیدن که به پای هم پیر بشین سلام <laughs> سلام, سلام, سلام ببخشید دیر شد یه ترافیک تهران حاجه ها منتظر ببخشید بپرد آخه این چیه میکنه؟ چی کار میکنه مگه؟ الان وقت سور خوابز و فیداب مالیدنه ولی یکی ببینه زایه میشیم کار ادروزش شده وا. دختر شیرازی جونم دختر شیرازی چشا تو به ما بنم داری میخونی؟ احمد دیرم شده اصلا فکر من نیستی یا آژانسی بگیری برم خونهمون دست شما درد نکنه جونت. میگم دیگه متر لحظات زیبای زندگی چقدر زود گذره الان پات بذاری بیرون عادادلم برات تنگ میشه میگم یکم بیشتر بمون خرامان خرامان مثل کپ این بر اون بر تولو سابقه نداشته من تو این موقع از خونه بیرون باشن حالا حتما همش رو نگرانم شدم برم بگم کجا بودم حالا مجبورم میشم دروغ بگم پسرم یه روی میون برو خلوت سراغ نداری؟ من خیلی دیروم شده الان این موقع شب همه جا اینجوریه یکم بعد حوصله کرد خانم آقای موردی اقلن دو برابر منه تو سند داره آخه چی برم بهش بگم والا بلا زشته بهش بر میخوره تو خودتو بذار جایی من آخه چرا ازش نیبورسی کجا میره خونه کی میره وزه چی میره این روزا تو همه ی خونه ها هست چرا شماره چه به تا نمیده بابا با همسن و سالاش دوره داره بیا داره دوست و آشنا داره اصلا دیر کرده که کرده میگی بدم سینجی تو فکر کردی من بچم من خط میارفم پیش قاضی میتونه بازی کنه اگر یه روزی گندش در نیمد هر چی دلت خواست من بکن این خط اینم نشون حالا میبینیم تو اصلا برگشته؟ <تصفيق> کاش اخلاق من برگشته بود اینجا چیکا سلام سلام مامان سلام آماما چه خبر خبر پیش شما شما از برون اومدید من چی چی بگم از پرچونگی اکرم خانم والا دخترشو دومادش جلو من یه دعو و رافی را انداختن که باید بودی و میدیدی حالا ولش کن شام چی بختی عزیز حالا نمیشد یه زنگ بزنی فکر کردم دوباره حالتون بد شده مردم از نگرانیم ببخش تق با تو قربونترا سفیده کجاست کجا نم تونستم که شمار ببرم وسط دعوا عزیزم مادربزرگت وسط لافتره کونده قربونت برم قش خانم لاف دره کندن تعبیل بگیر سفیده بیا چی برای بخرم بس جگ خب خوشمزه بود ها دوست داشتی حالا میخوام برای سپیدله خوشگلم که حرف راست میزنه یه بستنی خوشمزه بخرم بینم؟ با ماما بزرگ که میری بیرون این آقای هم تو میاد اگه خبرجی نیکنه اما آقای اگه برا میخواید اگه؟ موردی ها نست این آقای با ماما کجا میریشون برد سینما نه با نه وقت ندارم <تصال> می ترسم بهت قول بدم نتونم بیام تو وقت از دلخور بشی <تصال> اکرام خانم به زن و بچه هات شوار و بچه سلام برسون کار نداری؟ خدا حافظ شما کاری به من داشتی جا خان؟ نه خیر کاری ندارم جمع. دیگه توی محل بیاقی رو شدیم چرا اینجوری بیکنیم اگه دیوونه شدی؟ ست دفعه به دفتم این قرفرهای مامانت آخرش یه جندی بالا میاره گوش نشدیم حالا تعبیل بیکن مادرت دوست پسر گرفته مادرت دوست پسر گرفته مامان حالو آقو کی بوده کی همو آقو آق همسایه قدیمی خونه آقا خدا بیا مارزم آخه مامان میگه به شما یه شاخه گلم داده به خاطر آشنایی که از قدیم داشتیم به مادرت اعترام گذاشته یه شاخه گل تقدیم کرده این که برای من توی سن حرف در بیاره به دل خدا دلو میخواست خدا مرگم برگم میدون یه حرف نمیشنفت. حالا یه چیزی گفته شما فراموش کن کسی به اون تلفن دست نزنه من جواب میدم. بله. الو چرا حرف نمیزنی؟ چرا خفه خون گرفتی؟ مردی که بی پدر مادر مزاحم. اگه جیگر داری حرف بزن عجب شب خیلی بفهمی؟ اونو مردم باست چیز هایی میزنی که من مادر تو به ازاد میشونم عبزی آخه از اون سن و ساله تو خجلت نمیکشی؟ بردان این تلفنش میاد مخابرات تا پدر پدرس دوستاشو بیارن جلو چشش الو الو صدا نمیاد منو مختار نمیتونم بلند صحبت بکنم آمد از اون چیزی که میترسیدم سر و بم من جهگیر خان منو تو به هم دیده هم؟ نمی تون دیگه حرفمو کردم چون روم غت کوچیک نشده بود دیگه به من تلفن نگو چوی گیره تلفن رو کنترل میکنه خداش بچا حضاتون سرد میشه من گوشتم نیست شما بخوری نه شام خورده نه سبونه به خدا جهانگیر تو آخرش با این کارت مامانم تقش میدین کسی که آخر عمری فکر آبروی خودش و خانوادش نباشه هر بلایی زرش بیاد حقشه این مزخرف ها چیه داری میگی؟ یعنی میخوای بگی مامان بندی تو این سن و سال بعد از جنابالی اجازه بگیره که با که حرف بزنه با که حرف نزنه کجا بره کجا بیاد چی کار کنه چی کار نکنه خدا که تو مخه ایب کرده آره مخم ایب کرده حرف که دیگه جای من بود مخش میترکید یه پیرزن تو این سن و سال ا می کنه عد و میاد چ میدونم دوست پسر می گیره به قول خودش لابو می داره کنه او این خاوم مادردان شما هست توی محسکه یه برتم کرده شما بودی دیوانه نمی شدی نمی تاره گیری سکه نمی دای بیار پایین خیلی انصاف مامان من به خاطر یه لغمه نونی که اینجا میخوره انق زور بگه بهش تو اومد بزنیم تو میگن مرد؟ من تو اومد میزنم. کاشو تو چ شام کوور شده بود کاش دو تا گوشم شده بود نمیشدم که این خانم با اون مردی که لنده هور چه خوزحبلاتی رو برگوردو کنه دوزم میداری؟ عاشقمی؟ سرقرار نمتونو بیام والا قباحت داره بلا قباحت داره آلا دیگه هدوی مامانی من رو درمیاری؟ به خودم مرگون بده دست تو راحت شم کاش خودم منو با که دست شما دو تا زن راحت شم زهر مار خوردن توی خونه ب <تصفح> والا رزروشن یک هتل میگفتش که تو اتاقشه اما از دی شب رو گوشی رو بر چی کار میتونیم برش بکنین. بریم هتل سراغش سن بالاس، خطری ها یاست میگه با همون طناوی که فرستا دینش ته چا ها با همون هم حالا بکشیدش بفهم چطوری؟ خب تا حالا بهش کمک کردین دروغ گفتین که ازدواجش رو پنهون کنه عجی بعد قجیار رو کنیم. خود به خود همه چیز درست بابا چه حرفایی میزنی هم خب بند خدا اگر میتونست از همون روز اول این کارو میکرد اون نمیتونه. شما که میتونه مامان پس چرا نمیایین؟ خیلی وقت منتظرن سرم خیلی سنگینه شما برو من می آم. پس زود بیاین بفرمی ماده سلام علیکم بفرمین اینجا بفرمین پس آقا پیمان شما هستی افسانه از شما برای من خیلی تعریف کرده بود همه اون مشتاق بودیم شما رو ببینیم خیلی شما لطف داریم باعث افتخارون وله اینجور که پیدا ازمس که ایشون یه ازدواج قبلی هم داشتن البته ازدواج که نه خیلی وله ازدواج که نبود فقط یه عقد بود که اونم سر دو ماه به هم خورد چرا به هم خورد پسر من می خوب تحقیق نکردیم اشتباه کردن حق طبیعی هر آدمیه من خیلی راحت میتونستم این مطلب رو هم از شما هم از افسانه خانم پنهون کنم. دلم نمیواد علاقه خالص و قلبیمو رو با دروغ آلوده کنم. خب اگه اتفاق دور از جون دور از جون بری افسانه منم بیفته، چیکار بکنیم؟ والله حقیقتش اینه که ما اهل سنگ انداختن و اینجور چیزا نیستیم. ولی چون پدر مادر افسانه خانم شیراز هستن، مسئولیتشون افتاده گردن خانم بزرگشون. البته مهم خودشونن، بچه که نیستن خب به نظر من ممکنه که این ازدواج قبلیشون یه خورده مشکل ایجاد بکنه دیدم خونه شلوغه گفتم بیام از بیرون بهت صحبت بکنم پیمان با تو حرف زده؟ آره من نمی دونستم که افثانه نبه توه من می ترسم پیمان کار ما رو خراب بکنه تو بهش بگو اتفاقی من تو هتل پیدا کردی بعدم به خاطر آشنایی قدیمی که ما داشتیم برای من ماشین گرفتی سفارشم بهش بکن که به افسانه چیزی نگه باشه باشه ولی پیمان هر چیزی که بین من تو اتفاق افتاده میدونه اخ مرد تو هم سنه سال ای بچو بودی که بلند شدی چی داشتی بهش حرف زدی؟ در حال اون مثل پسر من میمونه همجور که ما یواشکی و هم دیگه ازدواج کردیم بی یواشکی هم تمومش بکنیم ولی اختر ما باید با هم حرف بزنیم من نمیتونم این موضوع خیلی حیاتیه مرادی که ما نامهرم شدیم اما مرادی تو میدونی که کار من رو خراب کردی؟ ها؟ اصلا با حرف تو موافق نیستم بابا جان یکی بشنوه میگه اینا هواس بازن میگه این دوتا آمدن یک شون مادر بزرگر رو انتخاب کرده اون کم نوهر رو اینجوری اصالت عشق چل ساله من زیر سال میره آقای مرادی با تمام احترامی که براتون قائلم بعد بگم حرفتون اصلا منطقی نیست. بابا هدف منم کمتر از هدف شما نیست. شما میدونین چی کار کردین؟ این آقا جهانگیر تاو تلفن منو افسانه رو داره کنترل میکنه. فقط هم به خاطر شماست. من که دستوردان نیستم. اگه بخوام عقب نشینی کنم همون ولای سرم میاد که سر شما اومده و یه عمر خرابش میشه. بابا جان من مطمئنم که قضیه تو افسانه بالاخره حل میشه. اما مورد من یه مقدار غیرعادی و سخت شده که تو با این کارات خرابترش میکنه آخ، اما موردی اگه من دوماده این خانواده بشن قول میدم دینا بهتون عدا کنم هر کاری دستم بر بیاد انجام میدم فقط شما هماره یکم در جریان بذار دیگه هفت اومد ببخشید من باید ببخشی. برم خیلی خوشوقتم ببین چیکول تاریخ گذشته این پیرزن حال روز خوبی نداره برام هم مثل روز روشنه که همش زیر سر تو این نسناس بدقوار است اصلا برام مهم نیست که چی گذشته ولی فقط میخواستم یه چیزی رو خوب بفهمی اگه فقط یه بار یه بار چشم بهت بیافته ببینم این وره افتادی دنبالشو موس موس می‌کنی یا مخشو بزنی به ولای علی نشسته می‌ندازم وسط خیابون. بله بله تو منو نمی‌شناسی اگه می‌شناختی می‌فهمیدی چی دارم بهت میگم حالا هم جونتو بردارو گولتو گم کن روشنه خیر یعنی بله بردی میخوام با این کارام آرامش و به هم بزنم اختر من و تو زن و شوهریم من نمیفهمم پس این وسط تکلیف عشق چی میشه عشق که جنس قاچاق آدم مجبور بشه پنهانش بکنه عشق بزرگترین نعمت خداونده این موبایلم برای تو گرفتم دیگه هیچ کس نمیتونه کنترول میمو کنه <تصفيق> بسه حدای جوونه در نیار همه فکر میکنن هر کی پیر بشه عاشق نمیشه ولی نمیدونن که هر کی عاشق نشه پیر میشه یکیت فلسف بافی نکن موحیدی که برامون راهی نمونده چرا؟ یه راه مونده سلام سلام قربان برای پرداخت خروجی اومدم خواهش می کنم برای کجا فرانسه کجا خانم دارن دوباره تاشمارم بیرون؟ میرم یه سی دی درسی از دوستم بگیرم جای سی دی دادن و سی دی گرفتن اینجور کارا دانشگاه بر برو تو شما هم اومدیم؟ منتظری نه؟ بله، نه بله نه تقریبا منتظر که هستی؟ بله، اگه منظورتون افزان خانمه، نه خیلی نه خیلی، بابا چی این برای میپلکی؟ نه اینجا یه آقا پسری از تازه با هم آشنا شدیم بچه مهل شما سه اتفاقی خودتی بله خودم هم با خودم آقا پسره داری میریم بیرون در مورد ازدواج اتفاقا جمان گیرخان چه خوب شو الان تنهایی یه سری صحبت های است که باید بهتون بگم راستیتش من اون که جواب نهست یعنی تمام. یعنی هرری روشنه بله اختیار داری این چه حرفیه شما بزرگ بای ببین بچه با جونت بازی نکن دیگه این طرف Ni malä malä kohtunaa چوردینو میگیری؟ گرفتم براتون. نرم و تازه. از این به بعدم تمام خریدای خونه رو خودم انجام میدم. شما زحمت نکش. بفرمایید. الو به خدا دیگه روزگاه روم سیاه کرده فکر خارج رفتن با من از سرت بیرون بکن من نمیخوام به زور نظر تو عوض بکنم هر چیزی که خوشحالت میکنه بگو من همونه انجام میدم. تو پس من اگه یه چیزی بهت بگم گوش میکنی به من قول میدی؟ قول میدم اگه من دوست میداری تو همه هفته بیا؟ حالا قوم بده سه شنبه ساعت ده صبح میریم همون محضری که عقد کردیم جدا میشیم <تصفيق> چه مشکلی؟ دیگه طلاقم دبای درد من نیست خب مگه چی شده؟ هیچی جانگیز خان صحبی اومد شناسناما نخواست خب؟ هیچی گمونم به هم مشکوک شده و علا که میگفت که برم نمیدونم کارت ملی بگیرم نمیدونم چی چی نمیدونم دیگه سر بودونمش از همچیز که میترسیدم سرم اومد خب حالا بود چی کار بکنیم؟ چه مدونم چی کار دست راستش رو سر ما خواهد مردم چه شانس دارن و آدم های بلند باشه بیا بیا بریم افسانه سانه نمیتونم چیزی ازت پینون کنم کشتی منو بگو چی میخواه بگی هر چی فکر میکنم میبینو هم گفتنش مسئولیت داره هم نگفتنش بعد دوتایی تصمیم بگیریم خبری ازش میزنی دادم هتل گفتن همون بسشم به تصویر کردن رو رفتن به درک سب و ساافین که رفتن جلوی من صحبت از این پریرزن عوض باز نکن که داره حالم ازش بر میکنین کاش جفته پاش قلم بشه دیگه پاش رو خونه ن حیا کنجان گیشه جو دارید میدیین رفها رو بزنی مامان نمی اگه بلوی سریش ب من همه از تو می‌بینم. من باید اومد که اون مرد او روز اول که میدم حکشون ذاشن کمتش باید می کارنشاخل خب خواهش میکنم ببینم با یه صرون کامل که موافق هستید شید زحمت چه کشیده <تصفيق> ماما ماما افسانه داگه ای, ای میکنه گریه میکنه؟ چی شده افسان ج؟ <تصفيق> <تصفيق> به من نمیگی؟ ماما بااسک داره میره اونا رفتن فرودگاه؟ تو دو ساعت دیگه پرواز میکنم به پاریس با شوهرش قارم اون پسر است؟ با سیده رو گریه میکنه زحمت کشیدین. دیگه شما برگردین. شما برگردین. خواهش واقعاً از شما من ممنونم. احمد جان ما اینجا منتظر میمونیم. چم دوناری که تحویل دادی از اینجا یه خدا بیزی می کنیم. از پشت پنجره منتظریم اینجا. خوبه. آمیدید. دیدی مدت که شیاد حق باز هم خونه ما رو از هم پاشون هم تو ما حل برد خدا کنه به موقع برسیم این حرفا چی میزنی جهانگیر چرا دیوونه شدی بابا اون دیگه ش... شوهرشه اونا با هم ازدواج کردن تازه اون مادر رو به چه یه عاشق نگاه میکنه نه مثل تو شوهر عاشق عاشق یه پیرزن اون بیاوشت خوابلوه از اون جغول گشناست فکر کرده یه پیرزنه مایدار گیر برده <تصفيق> نشسته زره پاش خانوم شما ساده ای پپی حالید نیست این چیزا آقا تهانگیر اشتباه میکنین بعضش توپه توپه سهمدار یه شرکت تو است تازه حقوق بازش هم داره شما این چیزار از کجا ملتفه شدی پیمان به هم گفته اگه پسرانم میبینیش بله چشم ما روشن بذاره تکلیف این رو روشن کنم هست با شما دوتار هم میزنم کفت دستتون چی شده همت؟ مشکلی پیش اومده؟ اختر اختر نیستش اینجا که نیست همه موردی حتما توه دیگه نه اگر بود که من میدیدمش حالا من برم توی سالونو اما جان ما میریم اون طرف شاید ببینیمش اگر پیدا کردی به ما خبر بده سلام عرض کردم احمد مرادی هستم منو پیچ کرده بودی اجازه بدین یه خانومی این رو برای شما امانت گذاشتن اینجا متشکرم. احمد بازم عذیتت کردم رسواهی رو به دوری از بچه هام ترجیح دادم دلم میخواد با اونا باشم کنار اونا بی میرم من ببخش سفر به خیر Yeah. جو جو میمونی ما اخدار چه کاریه که تو می‌کنی قلبم وای میسته تو مادر نیستی حال منو بفهم می‌خواستم برم ولی نمی‌تونستم خوشو بگردن پشیمونشم دوباره ها اگر هنوز نرفته باشند تو سالن پرواز در پشت شیش های امر میشه دیده شون ببار ببینو را ها جن اینجا چی کار اینجا چیکار میکنه سر تو بیار بالا خوب لبخند بزن دست بده خدافزی کن و بریم باشیم بنامجورا بیرست بیدر بگیرم بریم بریم افترجو گریه نکن خودتو کنترل کن دیدی که همه چیز شانسی شانسی جور شد خانوادت هم همه فهمیدن دیدی که چقدر همه خوشحال بودن حالا یه چیزی بهت میگم خوب تو واز کن اگر یک بار دیگه شک بکنی و بخوایی برگردی من نه تنها مخالف نیستم بلکه پاشم هستم حالا تو انتخاب کن تهران یا پاریس پاریس؟ آخه که از ما تو پاریس بگذاره که من بگذارم بریم تو ماشین بینیم بریم تو ماشین تمام بیام تمام بیام من دلخوری؟ اگه... اگه دلخورم نکنیم، بهم زور نگیر نه چرا و با دلخور باشم صبونه خوردی؟ صبونه هم دیلی نمیشه، میخورم میدیم خونه ما یه املت مشت با هم میزنیم، بعد میشنیم با هم اختلاط مکنیم چطوره؟ شما داری سر کار میزنیم، آقا جمان آخه اندازه یه که من بخوام سر کارت بذارم، شاد چی؟ bara civil görev آقا, آقا، احتیاج به سیدی نده شما یه لیبان آب که گرسمو بخورم شب شب هم براتو اینو نگاه کن یادت هست؟ هران که بهت ثابت بشه که هیچ وقت فراموشش نکردم تو هم اینو نگاه کن. حالا کامل شد.